زبان خامه ندارد سر بیان فراغ وگر نشهده دهم با تو داستان فراغ دریغ مدت عمرم که بر امید به سال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراغ سری که بر سر گردون به فخر می به راستان که نهادم بر آستان فراغ چگونه باز کنم بال در هوای و که ریخت مرق دلم پر در آشیان فراد کنون چه چاره که در بحر غم به گردا بی فتاد زورک صبرم زبادبان بادبان فراد بسی که کشتی عمر قرقه شود ز موج شوقتو در بحر بیکران فراد اگر به دست من افتد فراغ را بکشم که روز هج سیح باد و خانمان فراغ رفیق خیل خیالیم و هم نشین شکیب قرین آتش هجران و همقران قران فراق. چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده است تنم وکیل غذا و دلم زمان فراغ ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یار مدام خون جگر می خورم ز خان فراغ فلک شدید سرم را اسیر چند بره عشق ببست گردن سبرم بری اسمان فراغ به پای شوق گرین ره به سر شدی حافظ به دست هیر ندادی کسی اینان فراغ